خشت و خیال به نام خدا سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ با شما هستیم با یکی دیگر سرسله برنامه های خشت و خیال با موضوع معماری و اگر پیش از این شنونده این برنامه بوده باشید اطلاع دارید که ما در این برنامه عمدتاً تلاش میکنیم با دعوت از کارشناسان برجسته حوزه های معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی نکاتی رو در این موضوعات با شما مطرح بکنیم. در این برنامه موضوع ما در واقع تشکل جامعه مهندسان معمار ایران هست که اخیراً انتخابات دبیران این تشکل برگزار شده و دعوت کردیم از در واقع دو عضو جدید حیات دبیران این تشکل تا در این خصوص با شما گفتگوی داشته باشیم و در واقع ضمن اینکه یک مقداری متمرکز خواهیم شد بر نوع فعالیت های جامعه مهندسان معمار ایران به نقش در و هایی که در حوزه معماری و شرکت فعالیت می‌کنند هم خواهیم پرداخت با حضور دو مهمان گرانگاد جناب واقعی مهندس همیدرزاد ناصر نصیر و سرکار خانم مهندس فرشیا قرگوزلو. ای مهندس ناصر نصیر من خدمت شما سلام عزم می‌کنم و تشکر می کنم لات حضورتون در این برنامه. من هم خدمت شما و خدمت شما نگان عزیز سلام عزیم و خوشحالم که برای دومین بار در برنامه شما با موضوع جامعه اصل معماری ایران حضور دارم. خیلی متشکرم خانم مهندس قرهگوزلو خوش آمدین به این برنامه سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم که اینجا هستم. در برنامه گذشته یک مقداری پرداختیم به اینکه در واقع تشکل جامعه مهندسان معمار ایران به چه ترتیبی تشکیل شد. که اشاره‌ای داشتیم که در واقع در سال 78 در خانه هنرمندان ایران در شورای عالی هنر معماران بالاخره نماینده پیدا کردند و این شروع شکل این تشکل بود تا رسیدیم به امروز که بعد از درواقع یک وقفه 7-8 ساله در فعالیت ها این تشکل مجددا انتخاباتی برگزار شده و در واقع هیئت دبیران جدید و بازرسان جدید این تشکل معرفی شدند و بنا هست که یک فعالیت دوباره و یک آغاز جدیدی وجود داشته باشه در تاریخ این تشکل من فکر میکنم در واقع برای اینکه وارد این گفتگو بشیم بد نباشه یک مقداری صحبت بکنیم که خب چطور شد بعد از این دوره وقفه و رکود هفتش ساله در فعالیت های این تشکل مجددن در واقع این تشکل داره فعال میشه بحث در خصوص ضرورت فعال شدن این تشکل به شکل مناسب همواره در این سالها وجود داشته همینطور بحث چالشی در خصوص موارد اختلافی که بین دیدگاههای مختلف در جامعه معماران جریان داشت هم در این سالها وجود داشته بله. پیگیریهای اهل حرفه و سازمانهای مردم نهاد و افراد دلسوز و مطبوعات تخصصی هم پیرامونی موضوع همچنان وجود داشته در نهایت در طی فرایندی در پایان این دوره هفشت ساله مجموعه حیات مؤسس اون بخشش که هنوز فعالتر بود در تماس با رویدات های جامعه مانسان معمار به این نجه رسید که با اغماز از برخی از اختلاف نظرها و با اغماز از برخی از گره هایی که در اساسنامه وجود داشت با تدابیر قانونی مناسب و حقوقی مناسب که به تایید مجموعه هیئت مؤسس حاضر جامعه مانسان معمار رسید به از این دقیقت گلوگاه از این تنگنایی که به وجود اومده بود عبور بکنه و این رو به دست یک گروه جدید تازه نفس منتخبی بسپره که اونها ببخشید میونه کلامتون این هیئت مؤسس چه کسانی بودن در چه کسانی هستن بله این هیئت مؤسس گروه 15 نفره ای هستند که در سال سه جامعه مهسان معمار رو تاسیس کردن بله که از اونها افرادی که الان فعال هستن ریشه بله. بشه میتونم نام ببرم اگر بله. نیاز باشه آقای مهندس کامران شاهینفر که فوت کردند که دبیر تشکل که دبیر اول بودند. جامعه مهندسان معمار بودند. به. آقای مهندس بیژن شافعی آقای مهندس سعید سادات نیا، آقای مهندس بابک شکوفی، خانم مندس انوشه منصوری، آقای مهندس ایمان رئیسی، آقای مهندس محسن میردامادی، آقای مهندس بیژن کاموری مقدم، خانم مهندس محوش مرافشار، آقای مهندس کاووس شاهینفر، خانم مندس الهام صفارزاده، آقای دکتر رضا بهبهانی، آقای مهندس ایرج کلانتری اور مهندس مرداد هاشم زاده و آقای مهندس حسین گرجی بله این افراد هیئت مؤسس جامعه که مهدددان از طرف اینها این تلاش صورت گرفت البته من با در اینجا یاد بکنم به سراحت از اینکه رویداد مجمع اخیر به همت و تلاش ویژه‌ی آقای مهندس مرداد هاشم زاده بل. و در کنارشون خانم من از میره که واقعا به تنهایی زهمات زیادی کشیدند یعنی در شرایطی که همکاران دیگه و دوستان دیگه درگیر فعالیت شخصی خودشون و مشغله خودشون بودن ما نتونستیم کمکشون بکنیم و بدون منافع و چش داشت شخصی هر کدومشون یک تنه بار برگزاری این انتخابات رو با کموکاستی هایی که شاید داشته ولی به طرز خیرخواهانه ای انجام دادن و بانی این اتفاق شدن که به هر حال این جریان محقق شد. خانم مهندس ورگوظوری شما آینده این تشکر رو چطور می بینید؟ من دلزاییته با یک امیدی شروع بکنم چون روحیه و ترکیب جوانی که وارد این حیات دبیران شده همراه با تجربه گرانقدری که بقیه دیگه از اعضای حیات دبیران دارن منظر من ترکیب ویژه‌ای رو می‌سازه که اون اهدافی رو که ما داریم و روش نوینی ادامه بدیم فکر می‌کنم بین عضویت توی تشکل‌های حرفه‌ای و رشد سازمان‌ها با رعایت اخلاق حرفه‌ای کاملاً یک رابطه مستقیم وجود داره بنابراین اگر ما بتونیم تشویق بکنیم معماران خودمون رو معماران فعال و تی دانشجویانی که تازه فارغ تحصیل شدن و به جمع معماران پیوستن که به حضور داشته باشن در جامعه معماران من فکر میکنم این میتونه یکی از اهداف ما باشه برای حضور تمامی جامعه ممارانمون. و اینکه گام به گام شروع بکنیم اون اهدافی رو که برای تشکل سنفی خودمون در پیش رو داریم مثل قانون من کردن شغل خودمون درسته جریان تحول تقسیم کار که یک جور واسط میان فرد و دولت هستش انجامن های سنفی و ت های... در این حوزه هم فعال باشه. بله یکی از اهداف ماست من خودم شخصا با این برنامه اصلا وارد شدم. که فکر می کنم چون من خودم جزب مدیر اجرایی ماسسه تهران مطالعاتی کلان شهر هم هستم و دو دورم به هر حال جشن و مسابقه تهران رو من با حضور در حقیقت بزرگانی که در مؤسسه‌های تهران هستند دارم انجام میدم فکر می کنم اینقدر تاثیرگذاری سازمان سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای سنفی بالاست که میتونه بدنه رو قوی تر بکنه و به ما یاری برسونه در حیات دبیران تا بتونیم که این ارتباط رو برقرار بکنیم با نهادهای قدرت در شهر و بعد در این می حتی ادامه پیدا بکنه با تنظیم قواعد کسب و کار بین خود اعضای خودمون وزارت دائمی که میتونیم داشته باشیم بر این جریان تحول تقسیم کار. خب این لازمش در واقع این هست که بالاخره در حوزه قوانین اقداماتی صورت بگیره یعنی بر ترتیب خب این بالاخره الان یک مکانیسم قانونی وجود داره بحث ارجاع کار رو اینجور فعالیت ها یعنی این نکته جالبیه که بر ترتیب این تشکل غیر از مسائل فرهنگی، ترویجی، آموزشی بخواد در این حوزه هم وارد بشه اما چطور؟ این یک بر... ای سوال هست واقعا. خوبی رو گفتید بخاطر اینکه صفی وظیفه دشواری رو هم بر عهده داره یعنی دبیر سمفی به نظر من یکی از کارهای سخت رو در سال‌های آتی در پیش داره به دلیل اینکه ماجرای سمفی ما ماجرای ترخی بوده تا الان همونجوری که شما میدونید حتی انجمن‌های سمفی ما بیشتر روی های حقوقی کار کردند تا تشکل حقیقی یعنی این تنها تشکلی هست که داره برای معماران حقیقی کار می‌کنه ما بسیار از حتی از سمف ها تنبل‌تر بودیم در این مورد شما میدونید که اونها برای خودشون قیمت‌هایی دارن و زیر اون قیمت‌ها اصلا کار نمی‌کنن و فعالیت نمیکنه با هم, هم بستگی بیشتری دارن تر شده که این اتفاق برای معماران نیفتاده یعنی امیلین با... سنفیل انتظار ازش میره تو این تشکر که بله که بدون این قانون هدف نهایی برترجیع ارتقای کیفیت هست در نه هدف نهایی ارتقای کیفیت هست و قاعدتا گامهایی که برداشته میشه باید ریز بشه و با جزئیات بهش پرداخته بله خیلی متشکرم بله. از توضیحات شما فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و مجددا در خدمت شما باشیم با ادامه این گفتگو با شما شنوندگان عزیز هستیم با یکی دیگه از سبسل برنامه های خشت و خیال و در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای مهندس حمید ناصر نصیر و سرکار خانم مهندس فرشی آقر دو عضو جدید حیط ایران جامعه مهندسان معمار ایران و در رابطه با این تشکل با این دو مهمان گرامی صحبت میکنیم آقای مهندس ناصر نصیر اهدافی که در واقع برنامه‌های بهتر هست بگیم برنامه‌ها برنامههایی که در دوره جدید در واقع این تشکر قرار هست پیگیری بکنه به چه ترتیبی است البته خب ممکنه خیلی این سوال به موقع نباشه از این بابت که تازه انتخابات برگزار شده ولی خب به هر ترتیب ممکنه که یک چارچوبای اولیه‌ای وجود داشته باشه من از طرف خودم و از زاویه خودم به سوال شما پاسخ میدم به نظر من ما با یک پیشینه تمدنی معماری و همینطور با یک میزان بسیار زیاد ساخت و ساز فضای زندگی در شهرهامون به هیچ وجه مناسبی از نظر شرایط معماری و جایگاه معمار در جامعه نداریم. هدف غایی جامعه معمار از نظر من اعتلای معماری کشور و ارتقاء وضعیت معمارانه. گروه جدیدی که منتخب شده با یک کشتی آسیب دیده، صدمه دیده و به گل نشسته ای به نام جان موسان معمار مواجهه واقعا در این حد میگه. ذهنیت من اینه، برای این کشتی هست سال راکت بوده و صدمه دیده. اولین ماموریت این گروه که این کشتی رو مرمت بکنه، فینیشینگاشو درست بکنه و آرمارومون رو به آب بندازه. دوباره اون رو به سطح جامعه حرفه‌ای و جامعه غیر حرفه‌ای بیاره. و شروع کنه اون رو فعال کردن و زنده کردن و بعد تحویل گروه بعدی بده. از نظر من و همونجور که در اساسنامه جامعه معمار به وضوح روشن شده ما در چند حوزه باید کار بکنیم. در حوزه سنفی خانم مهندس قراگوزلو به تفصیل توضیح دادن. بله. شرایط حقوقی و قانونی فعالیت معماری در کشور ما هنوز به اون پختگی نرسیده که تضمین کننده کیفیت های معماری و تذمین کننده جایگاه معماران در شکل دادن به فضای ساخته شده و همینطور حقوق انسانی و هرفاصلی اونها باشه. ای یک از مسائلی که ما در حوزه انجمن سنتی باید کار بکنیم. در حوزه فرهنگی انجمن فرهنگی جامعه انسان معمار ایران مأموریت داره که برنامه های فرهنگی و آموزشی رو برای معماران کشور برای دانشجویان برای حرف مندان از طریق سخنرانی ها، برنامه های نمایش فیلم، همایش ها، نشریات و فعالیت های مجازی و غیر رو به وجود بیاره از نقطه نظر اجتماعی جامعه محسن میمار ایران مأموریت داره که ارتباط معماری و معماران رو با جامعه غیر میمار بله. از طریق مطبوعات، از طریق رادیو تلویزیون و دیگر رسانه ها و هدایت بکنه و شکل بده. انجمن دانشجویی جامعه معمار ایران مأموریت داره که ارتباط این تشکیلات رو با دانشگاه ها و با نظام آموزشی معماری کشور به شکل مناسبی برقرار بکنه. انجمن عضویت جامعه مهندسان معمار ایران مأموریت داره که شبکه و نتورک جامعه ای رو برای عضویت در آوردن حداقل تمامی معماران ایرانی به ویژه در سطح کشور که هنوز شرایط اون فراهم نشده فعالیتات وسیع هست و طبیعتاً کار سنگینی هم بره. در پیشه این طبیعتاً خانم مهندس خراجوز ببینید مواردی که الان آقای مهندس ناصر نصیری اشاره کردن خب همون طور که عرض کردم خیلی موارد وسیعیه و طبیعتاً ارتباطات ای هم لازم داره چه برنامه فکر میکنید میشه پیاده کرد در رابطه با ارتباط این تشکل با سازمان های دولتی فرض بفانید مثل بزارت راوش شهرسازی یا در واقع شهرداری ها من فکر میکنم که اولا که مسئله بسیار سخت و پیچیده یه ولی کاملا لازمه و باید توی همون اولین جلسات هیئت عبیران جامعه مماران بهش پرداخته بشه ممکنه برنامه های دراز مدتی باشه و برای اینکه ما بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم از چه بابت منظورتون هست؟ ببینید تجربه ما من فکر میکنم در سال‌های اخیر نشون داده که این ارتباط حاشا بهتر شده ولی هنوز توی گام های اولیه خودش به سر بره. بره. یعنی هنوز ما با نهادهای قدرت در شهر نهادهای تصمیم گیرنده اصلی مثل وزارت مسکن شورای عالی شهرسازی و غیره رابطه ای نداریم چون ما نهاد متشکلی نداشتیم که بتونیم صحبت‌های خودمون رو با یک همفکری و یک به قول معروف نظر مشخص به گوش اونها برسونه و در دوره قبل همین ارتباط نبوده در در دوره قبلی که این تشکیل من فکر می‌کنم این سال بعد با آقای بکنیم. بوده یا نه بوده این, این مهندس در دوره قبل به لحاظی که جامعه درگیر مسئله داخلی خودش بود خیلی فرصت نمی کنید عملا میکنی. فرصت این نکرد که ارتباط مؤثری رو با نهادهای مدیریتی برقرار بکنیم بله و خانم مهندس شما فکر میکنید در این دوره در این رابطه چه اقداماتی میشه انجام من همونطورم که گفتم توی وقشه قبلی یکی از برنامه های اصلی خودمه چون اصلا هم که دارم الان در مؤسسه تهران بر این اساس بوده من حتما اون رو ادامه بدم و من فکر می‌کنم که اولین گام اینه که ما اول از همه خود همه ای متخصص این متخصصینی که دور هم جمع میشن اون نگاه انتقادی و سازنده رو بین خودشون گسترده بکنن به یک نظر جمعی و حرفه‌ای برسند وقتی که ما مشخص باشیم دلایلمون روشن باشه برای اونچه که داره در اطراف خودمون از لحاظ معماری و شهر طبعا میتونیم اون رو خیلی بهتر منتقل بکنیم در نهادهای قضایی. نکته ای رو شما اشاره کردیم من در واقع حالا تو ذهنم موند که سوال بکنم اینکه این تشکل بیشتر معطوف به معمارانی هست که به صورت حقیقی کار میکنن و نه شخصیت های حقوقی مثل به عنوان احتمالاً منظورتون مهندسی شرکت های مهندسین مشاور بود. یعنیش بله. این هست که در واقع ارتباط سامانمندی وجود نخواهد داشت بین این تشکل و شرکت‌ها ای شاید بعدن توی بخشی که به عنوان انجمن‌های سنفی باشه به این موضوع پرداخته بشه من قطعا فکر می‌کنم این باشه چون به هر حال اونها هم بخشی از تشکل‌ها و سنفهایی هستند که باید این ارتباط باشون برقرار بشه اما اوزگیری که در جامعه مهندسان معمار ایران صورت می‌گیره به صورت معماران حقیقیه و قراره عزگیری که... هست بله. بله از شما اشاره کرد به بله. مربوط بله. به عزگیریه و قطعا اون تشکل‌ها و سمفها بخشی از فعالیت مشورتی انجمن‌های مختلفی هستند داخل این جامعه معماران قرار به فعالیت خودشون ادامه بده. بله یک نکته ای مهندس ناصری دوره قبل در واقع که این تشکل فعالیت میکرد یکی از اقداماتی که انجام میشد که خیلی هم با استقبال مواجه میشد جلسات نقدی بود که آقای رئیسی ایمان رئیسی برگزار میکرد در واقع در خانه هنرمندان به عنوان دبیر انجام دانشجویی اگر اشتباه نکنم بله. بله برنامه برای برگزاری جلساتی از این قبیل هم هم هست یا نه تم حالا یک توضیح بدم برای اینکه سوال خودم روشنتر بشه ببین تو سال اخیر ما زیاد دیدیم از این تیپ جلساتی که در واقع برای نر بررسی آثار معماران برگزار میشیگاه مهمان های خارجی هم دعوت میشه ولی بیشتر احساس میشه اینا جنبه تجاری داره بابت با هزینه های ثبت نام خیلی کلانی که گرفته میشه و بیشتر اون جنبه تجاری غاب هست تا جنبه فرهنگی و ترویی اتفاقی که در تش که شما عضت دبین ش و قبلا هم بازرس بودین میافتاد این بود که بالاخره به نظر می رسید این کار مشخصا یک کار علمی و تربیجی و آموزشی هست در این دوره آیا فعالیت هایی از این قبیل ادامه پیدا میکنه یا نه فعالیتی که در دوره قبلی در قالب انجامن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران که من هم حالا علاوه بر بازرسی در حقیقت بیشترین فعالیتم تو این انجامن بوده در کنار بیژن شافعی شروع شد با محوریت ایمان رئیسی در بحث نقد معماری برای اولین بار تبدیل به الگویی شد که پس از جامعستان میماری توسط خیلی از گروه های دیگر خوشبختانه مورد تقلید قرار گرفته خیلی،, خیلی کار ارزشمندی بود یعنی هر کسی که هر الگویی رو بگیره و ادامه بده باید سی دست مریضات بهش گفت حتی اگر حق ثبت نامی هم دریافت میکنید چاره ای نیست در هر کاری هزینه داره کار فرهنگی هم هزینه داره من حتماً همینطوره مونتا به نظر میرسه حالا شاید هم برداشته درستی نباشه ولی اون چیزی که بالاخره جا افتاده این هست که بیشتر اینا در واقع جهت تجاری دارن حالا من نمیخوام تضمین بدم به همه جلسات ولی هست جلساتی که در واقع به این ترتیب به نظر میرسه پیش میره من در اینجای نمیتونم اظهار نظر رسمی در رابطه آینده بکنم برای اینکه ورسی در جلسات آتی ما مسئولیت ها مشخص بشه و هر دبیری بر اساس مسئولیتی که به او واگذار شده برنامه های خودش رو روشن بکنه و اعلام بکنه اما امیدوارم که برنامه های معماری با همکاری دوستانی که قبلا هم کمک کردند و با همکاری علاقمندان جدید و حتی با ایده های بله. تکمیلی جدید بتونه پرشورتر تداوم پیدا بکنه خواهی من در شما در این کنید؟ من فکر می که اتفاقا سالهای گذشته ما تجارب خوبی هم در این زمینه داشتیم انجامنهایی هم بودن که بدون این چشم داشته مادی به این فعالیت پرداختن و این سخنرانی ها رو شکل دادن و این گفتگوها و نقد ها رو صورت دادن نمونهش همین در واقع تشکل مطالعات کلان شهر مؤسسه بله. بله من فکر می کنم بله. که شما بله. یه جلسه هم اینجا با آقای مندسکرونیان داشتید بله. اصلا زمینه بله. بله. صرفا خواستیم که از همه اونها دوری بکنیم یعنی بله. از تمام اون چیزی که به به شه قرمز معماری شده بود اینجا بله. همه رو داشته باشیم حتی اگر مههامی مالی داریم فقط اون مالی برگزار کنندی اون جلسه باشه و ما از کسی حقی رو حق عضویت یا هر چیز دیگه ای نگیریم ولی در زمینه جامعه معماران من فکر می‌کنم با نظر آقای مهندس ناصر اینجا موافقم که فکر می‌کنم برای بودن در این تشکل حرفه‌ای به هر حال باید یک هزینههایی طرف پرداخت بله. از طرف خود عضویت برای بله. عضوگیری در حقیقت در بودنشون در جامعه در این حال ما فکر می‌کنم فعالیت‌هایی که در آینده خواهد بود جبران خواهد کرد هزینه ای رو که خواهند گذشت. خلا عجه میگم من تصمیم گیرنده نیستم و قطعا ودن در مورد صحبت خواهد شد. بله. خب ما وقت زیادی نداریم در حدود دو دقیقه میشه فکر کنم یک چشم اندازی از آینده ارائه داد و در نهایت که جنبندی داشته باشیم. آقای مهندس ناصر نسیر اگر نکته ای هست خریش می‌کنم بفرمایید. بله من میخوام بگم که بسیار امیدوار هستم. تصور میکنم که به ویژه با ترکیب دوستانی که توی این هیئت دبی هستند که توی اونها از پیشکسوتان معماری ممکن اسم ببرید بله و مطمئنم ممکن حافظ یاری نکنه و مرتکب بی‌عدالتی بشه و هر حال اگه زیدین بدون اسم ب... اشاره بکنه خیلی جالب است که بر ترتیب هم ترکیب هم افراد پیشکسوت مثلا مهندس بهشتی آقای مهندس کرانتری آقای دکتر کاتوزیان و از طرفی در واقع افراد جوانتر بله <تصفيق> همه اینها عضو هستن و خب خیلی خیلی واقعا ترکیب جذابی ترکیب متنوعه و ترکیب بسیار مشتاق و علاقه‌مندی من بسیار امیدوار هستم فکر می‌کنم به راحتی می‌تونیم با نهادهای مدیریت شهری و سازمان‌های دولتی کار بکنیم بلده. برای اینکه اهداف و آرمان‌های مشترک داریم و منافع مشترک داریم همه می‌خوایم خدمت بکنیم که شرایط معماری و شهرهامون رو بهتر بکنیم و بسیار مهمه که اعضایی که شرکت کردن در مجمع و اونهایی که نتونستم بیان همچنان همراه این جامعه باشند. این جامعه با یه تمام این اعضا معنا پیدا می‌کنه نه با این گروه محدودی که انتخاب شده. درسته و شما خانم مهندس به عنوان در واقع حرف پایانی اگر نکته از در بیست 20 30 ثانیه بفرمایید. بذارید منم این خوشبینی رو رواج بدم توی در انتهای اون بحثمون. فکر می‌کنم که راه سختی رو در داریم. به دلیل اینکه به حال جامعه معماران راکدی داشتیم و باید اون رو ترمیم بکنیم. بخشی از صحبت‌ها و حرف‌های ما و تصمیم‌گیری‌های ما قطعاً بر رویمون خواهد بود. ولی من میدونم شخصا با توجه به شناختی که نسبت بعضای گروه دارم اینه که همه برنامه های خوبی رو در پیش دارن و قطعا برای اونها هم حتی وارد ریز برنامه ها هم شده خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مهندس فرشیا آقره گزرو و شما جناب آقای مهندس همین رزا ناصر نصیر. امیدوارم این برنامه مورد توجه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ قرار گرفته باشه من علی اعتاب به اتفاق دو مهمان ارجمند این برنامه با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم خدا نگهدار